دوستانایا کلیسای شما مشکلاتی داره؟ یادم پدرم همیشه به من میگفت اگه تو کلیسایی رو پیدا کردی که توش مشکلات نباشه من یه کنار میستم و وارد اون کلیسا نمیشم. اون به من میگفت که به این خاطر نمیرم داخل چون ممکنه با ورود من به اون کلیسا مشکلاتی وارد کلیسا بشه. درست همینه. همه ی کلیسا ها مشکلاتی دارن و پدر دانای من تلاش میکرد تا من بفهمم که کلیسای کاملی وجود نداره چون کلیسا از مردم ساخته شده نوشته پولس رسول به کلیسای قرنتس به ما این پیام رو میده که چطوری میتونیم مشکلاتی که امروزه در کلیساهای خودمون وجود دارن رو کنترل کنیم حالا اجازه بدین که به معلم خودمون ملحق بشیم و از پولس رسول بیاموزیم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید این کلاس به شما کمک میکنه تا کل کتاب مقدس رو مرور کنید. ما در حال حاضر به نامه اول پولس رسول به قرنتیان رسیدیم. میخوام توجه شما را به نامه اول پولس به قرنتیان جلب کنم. گفتیم که این نامه یک شاهکار شبانی و چه تفاوت با شاهکار الهیاتی پولس یعنی نامه او به رومیان داره. ما دیدیم که شانزده باب از این نامه ای که پولس اون رو به کلیسای اولیه قرنتوس نوشته به دو بخش تقسیم شده. روی کرده یازده باب اول این نامه تعدیبی هست. یعنی قصد اصلاح داره و روی کرده قسمت دوم که از باب دوازده تا باب شانزده ادامه پیدا میکنه بنا کردن هست. همونطور که به قسمت تعدیبی نامه نگاه کردید دیدید که پولس شبان کلیسا یک بار برای همیشه با این مشکلات مقابله میکنه پولس برای هر یکی از مشکلاتی که با اونها روبرو میشه یک راه حل به خصوص راه میده این راه حل ها از باب اول تا 11 ادامه دارند. با این حال وقتی که پولس وارد باب دوازدهم میشه او قسمت بنا کردن رو شروع میکنه پولس با قرنتیان و ما این راه حل های عملی عمومی و روحانی که میشه با اونها مشکلات کلیسای قورنتوس و یا کلیسای امروز شما را حل کرد در میون میذاره. مشکلاتی که پولس اونها را حل کرد اینها بودن. تفرقه، فساد اخلاقی، بردن برادران مسیحی به دادگاه برای حل مشکلات، سوالات و مشکلاتی درباره ازدواج، مشکلات جایگاه زنان در کلیسا و مشکلات مربوط به سوگند خوردن اگر ما با این مشکلات برخورد کنیم راه حل های بسیار خوبی برای آنها داریم وقتی پولس فصل دوازده رو شروع میکنه او چیزهای روحانی رو با قرنتیان در میون میذاره و همینطور می تونه مشکلاتی که توی کلیسای ما هست رو هم حل کنه اولین چیز روحانی که پولس با ما درمیون می چیزی که ما به اون عمل کرد روح القدس میگیم. قرنتیان از وجود حقیقت روح القدس بیخبر بودند. پولس ایمان داشت که اگر قرنتیان میدونستند که عمل کرد روح القدس در جمع کلیسایی اونها چگونه هست خیلی از مشکلاتی که اونها در جمعشون داشتند حل میشد. پس پولس درباره باره عمل کرده روح القدس با اونها صحبت میکنه. دومین چیز روحانی که پولس اون رو تشریح میکنه یک میوه روحانی به نام محبت هست. پولس آموزش میده که محبت راه بسیار خوبی برای حل مشکلات اونها در کلیساشون هست. محبت راه بهتری حتی از عملکرد روح القدس که در درجه اول توسط عطایای روح القدس به دست میاد. پولس میگه میوه روح یا ثمره روح که محبت هست. بهترین راه برای حل مشکلات کلیسای قرنتوس هست. پولس در باب چهاردهم از نظمی صحبت میکنه که باید در مواقعی که روحالقدس به ما عطا میده و سمرات محبت در ما ظاهر میشه، بین ما حاکم بشه. چگونگی حاکم شدن این نظم به زیبایی در باب چهاردهم توضیح داده شده. پس چیزی که نظم کلیسایی نامیده میشه یک چیز روحانی که پولس اون رو در نامش با قرنتیان و با ما در میون گذاشته. پولس به ما آموزش میده که رستاخیز مسی یکی از چیزهای روحانیه که باعث حل مشکلات در کلیسای قورنتوس میشه. وقتی بابی رو که در مورد رستاخیز نوشته شده میخونید، میفهمید که پولس با یک مشکل خیلی امیغ تر روبرو میشه که مشکل بی ایمانی به رستاخیز بود. و دست آخر پولس به راهنمایی در مورد نظارت به عنوان یک چیز روحانی می‌پردازه. نظارت باعث درست شدن چیزهای عملی کلیسای عیسی مسیح میشه. ما به مرور و بررسی اول قرنتیان پرداختیم. حالا میخوام با عمق بیشتری به این کتاب نگاه کنیم و این قسمت‌های مختلف رو بررسی کنیم. اولین مشکلی که پولس با اون برای اولین بار روبرو میشه مشکل تفرقه هست. ایمانداران قرنتوس به طرز ناامید کننده ای تقسیم شده بودند و به صورت گروه گروه دور چند رهبر جمع شده بودند. پولس با این پرسش به مشکل تفرقه می پردازه. آیا مسیح تقسیم شده؟ تفرقه ای که اونها در کلیسای قرنتوس و ما در کلیسای امروز خودمون داریم به خاطر مسیح نیست. ما به خاطر اعزا، اسقفها، رسوم دینی و اعتقادات تقسیم شدیم و درون ما تفرقه ایجاد شده بحث سر این هست که آیا میراث رسالتیشون به پتروس برمیگرده یا به پولوس انگار که سرچشمه ایمانشون از پتروس هست حتی اگر اثبات بشه که کسی دنبال روی پتروس رسول هست این موضوع باعث نمیشه که مسیحیت او اثبات بشه شاید شما پیرو پتروس باشید ولی پتروس سرچشمه و منشه ایمان ما نیست منشه ایمان ما خود عیسی مسیح است. پتروس خیلی واضح به ما میگه اگر بین شما تفرقه وجود داره مشکلی در رابطه شما با مسیح وجود داره یا مشکلی در رابطه شما با تو. پولس به قرنتیان و به ما گوش زد میکنه که به سرچشمه ایمان خودمون فکر کنیم. سرچشمه ایمان ما مسیحه و او تقسیم نشده خب سرچشمه و منشه ایمان ما چیه؟ ما مشکل تفرقه رو از زمانی که کلیسا به وجود اومد در بین خودمون داشتیم گروهی از مردم ایمان آوردن روح القدس اونها رو در نام مسیح تعمید داده اونها با هم یک جا جمع شدن و اسم کلیسا روی خودشون گذاشتند ولی بعد در میان همین گروه کوچک که اسم کلیسا رویشان هست افرادی هستند که دارای دیدگاه هایی هستند که بقیه افراد کلیسا اون رو ندارند پس اونها از کلیسا خارج میشن و مثلا اسم خودشون رو میذارن کلیسای نور بعد در کلیسای نور بعضی از افراد دیدگاه های متفاوتی از بقیه دارن و اونها هم فکر میکنند که باید از کلیسای نور جدا بشن و گروهی تشکیل بدند و اسمش رو بگذارند کلیسای نور حقیقی در میان افراد کلیسای نور حقیقی افرادی پیدا میشند با دیدگاهی که دیگران اون رو ندارند و اونها احساس میکنند که باید جدا بشن و اونها اسم کلیسای خودشون رو میذارند کلیسای تنها نور حقیقت و این چرخه همین طور ادامه پیدا میکنه. این قضیه از بدو تأسیس کلیسا تا به امروز دائمان در جریان بوده ما باید در وحله اول روی مسیح تمرکز کنیم و این رو بفهمیم که ما به خاطر مسیح تقسیم نشدیم چون مسیح تقسیم نشده ما نیاز داریم تا بر روی چیزی عمومی تمرکز کنیم که همون خود ایسای مسیحه و بعد باید بر روی چیزی که باعث تفرقه ما شده فکر کنیم سرچشمه این تفرقه ها چیست و چه چیزی اهمیت داره همونطور که پولس با موزل تفرقه در کلیسا برخورد کرد، او به کسانی که دور او جمع شده بودند راهنمایی می‌داد. پولس چیز زیبایی رو در چهار باب اول در مورد رهبری خودش و چیزی که در رهبری خودش مبهمه میگه. در بعضی از آیات زیبای باب اول تا باب چهارم، پولس درباره خدمتی که در کلیسای قرنتوس داشته صحبت میکنه. پولس جنبه کاریزماتیک و گذار خدمت خودش رو توصیف میکنه و در پایان حرف آخر خودش رو میزنه. او میگه به مردم تعلق نداشته باشید. متعلق به من، پتروس، آپولوس و یا هر کس دیگه ای نباشید. متعلق به مسیح باشید. همینطور پولوس پولس در باب چهارم میگه ای برادران، من این تشبیهات را به خاطر شما درباره خود و آپولوس به بردم تا شما از ما معنی این عبارت را بیاموزید. که از آنچه نوشته شده است فراتر نروید تا هیچ از شما به یکی در مقابل دیگری نبالد. زیرا چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشیده شده است پس چرا چنان فخر میکنی که گویی چنین نیست؟ البته نکتهی در حرفای پولس هست که میخواد به ما نشون بده و همون سرچشمه انجیله. سرچشمه گفتگوی او با قرنتیان. سرچشمه اتایایی که دارند و اتایایی که رهبران دارند مردم دوست دارند متعلق به مردم باشند، ولی پولس میگه شما حتی به رهبران مض شدتون متعلق نباشید متعلق به کسی باشید که اونها رو مض کرده متعلق به مسیح باشید پولس این نکته رو در باب چهارم خاطر نشان میکنه و یک آموزه جالب در مورد ره داره پولس مینویسه، اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز درباره خیشتن قضاوت نمی میبینید می قرنتیان به طور مثبت در مورد پولس قضاوت می کردن. وقتی ما کلمه قضاوت رو میشنویم، فکر می کنیم همیشه یک ارزیابی منفی یا یک نقده، البته که، قضاوت اگر مثبت باشه باز هم قضاوته مثلا تصور کنید که شما به کسی میگید من فکر میکنم تو بزرگترین مسیحی هستی که تا به حال دیدم من تا به حال با مسیحی به بزرگی تو ملاقات نکردم تو بزرگترین معلم کلاس های یکشنبه کلیسا هستی که من تا به حال دیدم میدونید که این هم یک قضاوته به این صورت بود که اونها در مورد پولس قضاوت میکردند میگفتن پولس تو بزرگترینی و ما فقط متعلق به تو هستیم پولس به اینجور تعریف و تمجید قضاوت میگه پولس میگه این واسه من خیلی کمه که شما منو ارزیابی میکنید شما من رو با تمجید خودتون مورد قضاوت قرار دادید من حتی نمیتونم در مورد خودم قضاوت کنم من به اندازه کافی در مورد خودم نمیدونم که خودم رو قضاوت کنم شما منو فقط چند ساعت در هفته میبینید فکر میکنید توانایی قضاوت من رو دارید وقتی شما فقط ظاهر منو دیدید و فقط چند ساعت در هفته منو دیدید چرا حتی وقتی من خودم نمیتونم خودم رو قضاوت کنم شما به خودتون اجازه میدید که منو قضاوت کنید من نمیتونم خودم رو قضاوت کنم چون حتی انگیزه قلب خودم رو نمیدونم روزی خداوند میاد و وقتی خداوند اومد نور مخفی داره که انگیزه قلب من رو نشون میده او این انگیزه را از رفتار من بیرون میکشه بعدش اگه رفتار شما تمجیدآمیز باشه جوابتون هم تمجیده ولی تا زمانی که این اتفاق نیفته هیچی را قضاوت نکنید. منو قضاوت نکنید. این خیلی آسونه وقتی این استنباط را از متن داشته باشیم بگیم صد درصد دقیقا درسته مسیحیان نباید دیگر مسیحیان رو قضاوت کنند. ما نباید کسی را قضاوت کنیم. با این حال این تمام تعلیمات کتاب مقدس در مورد این موضوع نیست پولوس اینجا در مورد چیز معینی صحبت میکنه قضاوت انگیزه قلب پولس میگه من حتی انگیزه قلب خودم رو نمیدونم چطور میتونم از اونها سر در بیارم پس شما هم انگیزه من رو قضاوت نکنید انگیزه دیگر افراد رو هم قضاوت نکنید شما از کجا میتونید بدونید انگیزه های دیگران چیه؟ اونا خودشونم نمی دونن که انگیزه هاشون چیه. در باب پنجم، پولس این افراد رو توبیخ می کنه برای اینکه در جایی که باید قضاوت می این کار رو نکردن. در فصل پنجم، پولس با مشکل فساد اخلاقی یا بی افتی در کلیسا برخورد می کنه. مردی که با زن پدرش، نامادریش در یک رابطه خارج از عرف زندگی می کنه. این مرد ممکن یکی از رهبران کلیسای قرنتوس بوده باشه این رابطه کاملا آشکار بوده و همه از قضیه با خبر بودند و کسی کاری انجام نمیداده. پولس این افراد رو توبیخ میکنه برای اینکه آنها این مرد رو قضاوت نکردند او در باب پنجم به این افراد میگه شما مسئولیت قضاوت افراد خارج از کلیسا رو ندارید من برای شما نامه ای نوشته بودم و گفته بودم که نباید با زنباره ها آدم و دزدان رابطه داشته باشید و خیلی چیزهای دیگه با این حال پولوس می نویسه من در اون نامه نگفتم که ارتباطتون رو کلن با گناهکاران قطع کنید چون بعد شما چطور میخواید حقایق انجیل رو با اونها در درمیون بذارید منظورم در نامه قبلی این بود که اگر کسی خودش رو به عنوان برادر معرفی میکنه و بعد زنا میکنه یا زنبارگی میکنه یا دائم الخمره با چنین انسانی نباید رفت و آمد داشته باشید به این خاطر که اتهام اولیه علیه کلیسا اینه که ما گروهی از مردم ریاکاری حالا اگه برادری هست توی کلیسا که یکی از رهبران کلیسا و در گناه زندگی میکنه در واقع او یک ریاکاره. به این خاطر که او ماسک اشتباهی رو به صورت زده. او چیزی که وانمود میکنه نیست. چیزی که ظاهرش نشون میده نیست. او یک ریاکاره. حالا اگه شما با این مرد در ارتباط باشید و دنیا شما رو با او ببینه، اونها میدونن که او ریاکاره و میدونن که در گناه زندگی میکنه. دنیا هم به شما همون برچسب رو میزنه و میگه اونها همشون ریاکارن. شهادت شما دیگه تأثیری نخواهد داشت. چیزی که پولس در باب پنجم میگه اینه. شما باید برادران خودتون رو قضاوت کنید. کتاب مقدس نمیگه که هیچ وقت قضاوت نکنید. در پنج اول باب هفتم انجیل متا مسیح میگه حکم نکنید. بسیاری از مردم بعد از کلمه دوم وقفه ای رو میذارن و به این دلیل که دوست ندارن بر اونها حکم بشه. وقتی که شما تلاش میکنید، تا با اونها برخورد کنید، اونا میگن حکم نکنید. این چیزیه که کتاب مقدس میگه. انگشت اشاره رو سمت من نگیرید. مهمترین چیزی که در پنج آیه ابتدایی انجیل متا در مورد حکم کردن و قضاوت کردن هست، اینه که اول خودتون رو قضاوت کنید. بعد از اینکه خودتون رو قضاوت کردید، شما به طور واضح میتونید برادر خودتون رو قضاوت کنید. شما این مسئولیت رو دارید تا برادر خودتون رو قضاوت کنید اما چیزی که مهمه اینه که اول خودتون رو قضاوت کنید این ماهیت پنج آیه اول از باب هفتم انجیل متیه است کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه زیر یوغ نابرابر بابی ایمانان نریم حالا فرض کنید که شما با یک ازدواج یا یک شریک شغلی مواجه شده اید و میخواهید که این قسمت از آموزه کتاب مقدس رو اجرا کنید چطور خواهید این آموزه کتاب مقدس رو اجرا کنید در حالی که نخواهید اون شخص رو مورد قضاوت قرار بدید و بفهمید که او ایماندار واقعی هست یا نه کتاب مقدس میگه که ما نباید قضاوت کنیم کتاب مقدس میگه که یک منطقه معینی هست که شما شرایط قضاوت کردن اون رو ندارید مثل منطقه انگیزه ها انگیزه های شما یا شخص دیگری پس این قسمت ها رو قضاوت و داوری نکنید با این حال در باب پنجم پولس به قرنتیان میگه شما باید ایمانداران رو قضاوت کنید مخصوصا رهبرانی که در گناه زندگی میکنند آیا شما بخشی از یک کلیسای محلی هستید که نیاز به یک چنین نظم کلیسایی داره من شما رو تشویق میکنم مخصوصا اگر در کلیسای خودتون رهبر هستید با شبانتون دیدار کنید و او رو تشویق کنید تا نظم کلیسایی رو که در کتاب مقدس در موردش صحبت کنه، تمرین کنه. مثل پنج باب اول کتاب قرنتیان و انجیل متا باب هجدهم و اول تی باب پنجم. یکی از دلایل اصلی که امروزه کلیساها ضعیف شدهاند، اینه که از نظم کلیسایی که مسیح و پولس در صحبت هاشون تعلیم دادند دور افتادند. من تمام قسمت‌های کلام رو که در مورد نظم کلیسایی تعلیم داده، براتون نام بردم. آیا شما انگیزه های دیگران را قضاوت میکنید؟ این کار اشتباهه. دیگه این کارو نکنید. اما بهتره که خودتون رو قضاوت کنید. در باب پنجم شما نیاز دارید تا دو تا چیز رو ببینید. اول از همه، دلیلی که چرا این گناه با نظم کلیسایی سر و کار داره، اینه که این گناه دنباله داره. این گناه ادامه داره. این مرد هر شب با نامادری خودش میخوابه. این یک گناه ممتد و دنباله داره. این چیزی نبود که یک بار اتفاق بیفته و همین الان اتفاق بیفته و همه از اون با خبر بشن. در کلیسا که بدن مسیح گناهی که ادامه داشته باشه، غیرقابل تحمله. ما اینجا آموزش ندیدیم که کلیسا باید گذشته فرد رو بیرون بکشه و او رو بدنام کنه. با این حال وقتی گناهی ادامه داره، در زندگی شخصی این گناه دائما وجود داره که بخشی از بدن مسیحه به این گناه نباید اجازه داد تا ادامه پیدا کنه تنها دلیلی که ترد شدن شخص توصیه میشه و اینکه پولس این رو در باب پنجم توصیه میکنه اینه که این مرد نخواست که توبه کنه او به گناهش واکنش نشون نداد او در مقابل گناهش پاسخگو نبود او نخواست که گناهش رو متوقف کنه او نخواست که از گناهش برگرده، تنها زمانی کتاب مقدس آموزش میده که برادر یا خواهر خودتون رو سرزنش کنید که گناه او مداوم باشه و ادامه پیدا کنه و او نخواهد که از گناهش برگرده و کاری برای اصلاح اون انجام بده. گناهی در بدن مسیح وجود نداره که در صورت رها کردن و توبه کردن از اون خدا اون رو نبخشه و فراموش نکنه. گناهی نیست که اگر باهاش برخورد بشه، بخشیده نشه. با این حال، با تمام گناهان باید برخورد کرد. در جاهای مختلفی از کتاب مقدس در مورد نظم کلیسایی صحبت شده و راهنمایی هایی داده شده. مثلا در اول قرنتیان باب پنجم با نظم خاصی که بر اساس محبته رفتار شده. باید با برادر و یا خواهری که در گناه زندگی میکنه با محبت برخورد کرد. نکته در تمام این قسمت ها اینه وقتی که برادر و یا خواهری جلو میاد و به گناه خودش اعتراف میکنه چیزی که باید کلیسا بگه اینه. ما شما رو اونقدر دوست داریم که شما رو ترد نمی کنی. هدف اینه که برادر و خواهرمون دوباره احیا بشن. در انجیل متا باب هجده، در قلاتیان باب شش و بقیه جاها با این آموزه و هدف که همیشه باید باعث احیای برادر خود باشید مواجه میشید. همه ما میتونیم دید روحانی خودمون را رو از دست بدیم. وقتی که اون را از دست دادیم، همونطور که در مزمور 23 میبینیم، روح ما باید برگردونده بشه. خدا چطور روح ما را رو برمیگردونه؟ جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راهای ادالت هدایتم میکنند. این اینگونه است که خدا دوباره ما رو بلند میکنه او ما را به راه های عدالت راهنمایی میکنه. در غلاطیان باب شش اینطور میخونیم ای برادران اگر کسی به گناهی گرفتار شود شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. بازگرداندن یک کلمه عملیه در این حال به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی با یک غرور کاذب مثل فریسی ها. با انسانیت و محبت به سوی اون فرد برید و بگید شما باید توبه کنید چون شما باید بازگردونده بشید. کتاب مقدس در امثال سلیمان پانزده سیزده میگه عقل نیکو نعمت را میبخشد اما راه خیانتکاران سخت است. خب شما میتونید روی این حساب کنید. اگه کسی توی گناه زندگی میکنه مخصوصا در بین ایمانداران میدونید که اون خیلی سیاه و زندگی خیلی بدی داره. مزمور 32 تیر روزی داوود رو به تصویر میکشه زمانی که او در گناه بود و به گناهش اعتراف نکرده بود داوود به خاطر گناه خودش از نظر جسمی هم مریض شده بود شما میتونید روی این حساب کنید وقتی ایمانداری در گناه زندگی میکنه او به شدت ناراحته و عواقب خیلی خیلی منفی در انتظارشه پس جدای محبت کردن به او شما باید دعا کنید که این روح بازگردونده بشه. در پنج باب ابتدایی کتاب اول قرنتیان ما نسخه برای شفای بیماری گناه داریم. در اول قرنتیان باب ششم پولس رسول با مشکل به دادگاه کشاندن همدیگه روبرو میشه. همونطور که ما در باب دوم دیدیم چیزی که همیشه برای پولس مهم بوده روح القدسه. مشاهده کنید که در تمام تعلیمات پولس که او با مشکلات روبرو میشد همیشه از روحالقدس صحبت میکرد. او به ایمانداران قرنتوس در باب ششم میگه اگر کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت میکند آن را نه نزد مقدسان بلکه به محکمه بی ایمانان برد. آیا نمیدانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضاوت درباره مسائل بس کوچکتر نیستید؟ آیا نمیدانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد چرا رسد به قضاوت درباره مسائل این زندگی پس یا به هنگام بروز این گونه اختلافها میان خود کسانی را به دادرسی میگمارید که در کلیسا کسی به حساب نمیآیند این را میگویم تا شما را شرمنده سازم آیا بین شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند در عوض برادر علیه برادر به محکمه می میرود آن هم نزد بی ایمانان پولس نمیگه که شما باید کمترین ارزش رو توی کلیسا داشته باشید یا فردی باشید که میزان عطایای کمی رو در کلیسا داره و از دیگران بخواد که در مورد شما قضاوت کنه چیزی که پولس به اون اشاره میکنه اینه اگر مشاجره بین دو ایماندار بازاری که با هم شریک هستند وجود داره اونها باید نزد شبان یا شیخ کلیسا برن که در مورد شغل و بازار با اطلاع باشه و همینطور روحانی باشه اونها باید جلسه ای ترتیب بدند و در اونجا صحبت هاشون رو با هم در درمیون بذارن و یک راه حل از فرد روحانی بگیرن به عنوان یک شبان خیلی پیش اومده که من در این جلسات شرکت کنم و همیشه بر این اعتقاد بودم اونها همین امروز باید مشکلشون رو حل کنن دستورالعمل پولوس همین امروز باید اجرا بشه این اساس قانون مرجعه که در طول قرنها در جاهای مختلف فرق داشته به طور ساده قانون مرجع یعنی حل مشکلات به دست کسانی که در کلیسا روح القدس رو دارند و همینطور توانایی حل کردن مشکلات در بدن مسیح رو دارند. نه کسانی که در خارج از کلیسا هستند و روحانی نیستند ما با این مسئله در قسمت اول باب شش روبرو میشیم و در پایان این فصل پولس دوباره برمیگرده و در مورد مؤذل فساد اخلاق در کلیسای قرنتیان صحبت میکنه. پولس یه نویسنده بزرگه. او در مورد یک موضوع مینویسه و بعد به یک مسئله دیگه میره، بعد دوباره برمیگرده و به همون موضوع اصلی میرسه. در باب پنجم، پولس به موضوع فساد اخلاقی در کلیسا اشاره میکنه، بعد به مسئله دیگری در مورد مسیحیان قرنتوس که همون به دادگاه بردن همدیگه اشاره میکنه و دوباره به همون موضوع فساد برمیگرده. به عبارت دیگه او به ادامه آموزش خودش در باب 5 بعد از پرداختن به مشکل دعوای غذایی در باب بابشش برمیگرده در واقع چیزی که پولوس بعد از برگشت به موضوع فساد اخلاقی میگه اینه. آیا نمیدانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد فریب نخورید، بیفتتان بد پرستان زناکاران هم جنس بازان چه فائل چه مفعول، دزدان، تمعورزان، میگساران، نزاگویان، و شیادان وارث پادشاهی آسمان نخواهند شد این یکی از هیجان انگیزترین چیزها در مورد انجیله فکر کنید قبل از زمانی که پولس برای بشارت انجیل به قورنتوس بره چه کسانی در قورنتوس زندگی میکردند و چه ویژگی هایی داشتند او اینجا در مورد این افراد در شش فصل اول اول قرنتیان با ما صحبت میکنه همونطور که کتاب رومیان در مورد بعضی از گناهکاران هایی داره فراموش نکنید که نامه قرنتیان هم راهنمایی هایی در مورد افرادی داره که قبل از اینکه پولس وارد قرنتوس بشه در گناه در اون شهر زندگی میکردند. معجزه اینه که اونها دیگه افراد سابق نبودن. اونها شسته شده بودن، اونها پاک شده بودن و دوباره متولد شده بودن. این همون معجزه انجیله. در اول قرنتیان باب شش شما نمایشی میبینید که چگونه انجیل عیسی مسیح میتونه قدرت خدا در نجات و تغییر زندگی مردان و زنان بشه. پولس برای بار دوم در باب 6 در مورد فساد اخلاقی با قرنتیان صحبت میکنه و این به شما نشون میده که قرنتیان در واقع کجای تفکراتشون هستن. اونها همون طور زندگی میکردند که در قرنتوس دیگران زندگی میکردند. مثل بتپرستان در یونان. این میگه که مردم اونجا به طرز توصیف نشدنی گناه آلوده بودن. این میگه که مردم اونجا به طرز وصف ناپذیری در گناه بودند. این به شما میگه که گناهکاران قرنتوس چگونه زندگی میکردند. اگر شما امروز برید و نتایج باستانشناسی رو ببینید متوجه خواهید شد که اونها چگونه در فساد بودند. همونطور که ما در مورد این فساد اخلاقی میخونیم و همونطور که پولس با این فساد اخلاقی روبرو میشه او به اونها میگه خدا مئدر و برای قضا و غذا رو برای معده ساخته با این حال روزی شما دیگه نه به معده نیاز دارید و نه به غذا. ولی گوش کنید بدن شما برای گناه جنسی آفریده نشده. قرنتیان این گناه مخته بودندن. همونطور که معده برای غذا و غذا برای معده ساخته شده قرنتیان یاد گرفته بودند که بدن هم برای گناه جنسی ساخته شده. پولس به گرننتیان یک حقیقت خیلی بزرگ رو میده وقتی میگه، آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدسه که در شماست و آن را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهای گران خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید؟ اینجا چیز وحشتناکی در مورد گناه جنسی وجود داره. آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای مسیح هست؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاهشهی گردانم؟ هرگز؟ پولس با مشکل فساد اخلاقی روبرو میشه و نتیجهگیری خودش رو در انتهای باب شش ارائه میده. همونطور که پولوس باب هفتم رو می نویسه، قسمت جدیدی از نامره شروع میکنه. محققان اعتقاد دارند که تمام مشکلاتی که در شش باب اول در موردشون صحبت شده، پولس از اونها توسط اهل خانه خلوه باخبر شده بود. ظاهرا کسانی که در خانه خلوه بودند تمام این چیزها رو به پولس گفته بودند و، پولس تا به این نقطه با آنها روبرو شده بود ظاهرا دومین منبعی که پولس از مشکلات معضلاتی که در کلیسای قرنتس بود باخبر شده نامه‌ای بود که به او نوشته بودند در ابتدای باب هفت در اولین آیات پولس نویسه و ما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید و در اینجا وارد قسمت دوم نامش می میشه ظاهرا افراد کلیسا در نامهشون در مورد این مشکلات با پول صحبت کرده بودند. ازدواج، مسائلی درباره گوشتای قربانی اختلافاتی در مورد رژیم غذایی همونطور که در رومیان دیدیم مستی در هنگام شام خداوند و همینطور سوالات و مشکلاتی درباره جایگاه زنان در کلیسا البته مشخصه که ایمانداران قرنتس مشکلاتی هم در مورد عطایای روح القدس داشتند. اینطور به نظر میاد که قرنتیان نسبت به کسانی که عطیه روحانی نداشتند یا کسانی که عطایای اونها با قرنتیان یکی نبود احساس برتری می‌کردند این خیلی طبیعیه که پولس نسبت به این مشکلات در این قسمت عکسالعمل نشون بده پولس ایمان داشت که قرنتیان نیاز به شناخت در مورد محبت آگاپه داشتند که نشان دهنده اینه که افراد از روح القدس پر شدهاند همچنین در قرنتس مشکلاتی در خصوص نظم کلیسایی وجود داشت روشنفکران قرنتوس در مورد رستاخیز مسیح شک داشتند. به طور واضح اونها به رستاخیز مسیح اعتقاد نداشتند. وقتی پولوس باب هفت رو می او شروع به راهنمایی در مورد مشکلاتی میکنه که کلیسای خدا در قرنتوس برای او نوشته بود. باب هفت میتونه فصل خیلی خیلی سختی باشه. باب هفت اول قرنتیان در کتاب مقدس به عنوان قسمت ازدواج نام گرفته. باب هفت این طور شروع میشه و اما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید مرد را نیکوست تا زن را لمس نکند این یک شروع خوب برای باب ازدواج نیست نباید زنان را لمس کرد؟ مقوله ازدواج چیه؟ بعضی از مردم فکر میکنند که پولوس یک آدم تنگ نظر و یک پیرمرد مجرده که از زنا بدش میاد و با ازدواج و خانواده مخالفه شما باید از بالا به این باب نگاه کنید اول از همه این رو مشاهده کنید در آیه 26 کلید باز کردن قفل کل باب رو پیدا می کنید. مخصوصا اینکه پولس در این قسمت بسیار سخت نظرش رو در مورد موضوع ازدواج عنوان می کنه. در آیه 26 اون می نویسه من بر این گمانم که به سبب بحران زمان حاضر برای انسان نیکو باشد در همان وضعی که هست باقی بماند بحران زمان حاضر شکنجه و آزار و عذیت بود. اگر شما طوری زندگی می کنید که امکان داره شما را دستگیر کنن و به زندان بیاندازن یا توسط شیرها خورده بشید، این خیلی راحتتره تره که مجرد باشید تا اینکه ازدواج کرده باشید و بچه داشته باشید. بدترین چیز برای انسان دیدن شکنجه و رنج خانواده پس قسمت بسیار سختی که در مورد ازدواج به اونها داد به سبب بحران زمان حاضر بود. وظیفه شما اینه همونطور که این فصل رو مطالعه کنید توجه داشته باشید که پولس مراقبه که محور تعلیماتش خود عیسی مسیح باشه. اگر عیسی موضوعی رو در مورد ازدواج تعلیم داده، پس چیزی به عنوان طلاق وجود نداره. وقتی پولس به این موضوع میرسه میگه من میگویم نه خداوند با این حال وقتی پولس موضوعی رو عنوان میکنه که ظاهرا سوالیه که عیسی مسیح در تعالیمش به اون نپرداخته پولس میگه حکمی از خداوند نیافتم بلکه نظر خودم رو بیان میکنم در پایان این بابو میگه فکر میکنم که من نیز روح خدا را دارم برای همین شما نمیتونید ادعا کنید که بعضی از قسمت این باب الهام خدا هستند و بعضی ها نیستند باب مربوط به ازدواج رو برای جلسه بعدیمون مطالعه کنید و ببینید آیا چیزی رو که پولس در مورد ازدواج در نامه اول به قرنتیان باب هفت تعلیم داده کاملا متوجه شدید یا نه؟ میخوام با این جمله درس امروز رو تموم کنم. بعضی از شما در گذشته چنین بودید. آیا شما هم میتونید این رو بگید یا هنوز در گناه زندگی میکنید؟ کلام خدا واضحه. آیا نمیدانید که بی وارد پادشاهی خدا نخواهند شد؟ اگه وارث پادشاهی خدا نیستید الان به طرف خدا بیایید و در او تازه بشید. عزیزان عیسی مسیح به رهبران مذهبی دوران خودش فرمود من آمدم تا گم شده را بجویم و نجات بخشم. این حرف به این مناست که انسانهایی که بیمار هستند به دنبال پزشک گردن. کسانی که از نظر روحانی مریزند باید پیش عیسی ایسا صابرند. عیسی مسیح همچنین دعوت میکنه که بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. آیا در ایسا آرامی پیدا کردین؟ ما شما را دعوت میکنیم که امروز این کار رو بکنید. تا مشارکتی دوباره امیدواریم که زندگی شما با خوشی شناخت خداوند و نجات دهنده و کسی که نیازها و احتیاجات شما رو برورده میکنه پر بشه. خدا بهتون برکت بده. آمین.